قسط های هزار یک شب شبه چهل و چهارم خلیفه از فصاحت قانم بن ایوب شگفت ماند و با قانم گفت نزدیک ترای چون نزدیکتر رفت خلیفه گفت ماجرا بیان کن و از خبر خیش مرا آگاه ساز قانم ماجرا بیکم و کاست باز گفت خلیفه دانست که او راست همی گوید پس خلعت فاخر بهدو داده گفت ای قانم ذمت من بری کن قانم گفت بنده را هرچه هست متعلق به ملک باشد خلیفه را این سخن پسند افتاد و قانم را از نزدیکان خود گزید و قصر جداگانه بهر او بداد و زیاء و عقار بر او عطا فرمود قانم مادر و خواهر را به قصر خویشتن آورد چون خلیفه شنید که فتنه خواهر قانم فتنه روزگار است او را به خود خواستگاری کرد قانم گفت او از کنیزکان خلیفه و من نیز از مملوکانم پس خلیفه صد هزار دینار زر به دو داد و قاضی و شهود حاضر آورده کابین ببستند به یک روز خلیفه از فتنه و قانم از قوت القلوب تمتع برگرفتند پس از آن خلیفه فرمود که حکایت را بنویسند تا آیندگان آگاه گشته از قضا و قدر نگریزند و کارها به خداوند زمین و زمان بسپارند شهرزاد سخن بدین جارسانید گفت ای ملک جوانبخت این حکایت عجیب تر از حکایت ملک نعمان و فرزندان او شرکان و زو مکان نیست و آن این بوده که یت ملک و فرزندان او شرکان و زو المکان. در شهر دمشق پیش از خلافت عبدالملک بن مروان پادشاهی بود که ملک نعمانش گفتندی ملکی بود بس دلیر و شجاع که به پادشاهان اکاسره و قیاسره غلبه کرد و جهان فرا گرفته بود و ممالک شرق و غرب و هند و سند و چین و یمن و حجاز و حبشه و جزایر و بهار در زیر حکم داشت و رعیت و سپاه از داد و دهش او خورسند و شادمان بودند و ملک را پسری بود شرکان نام بس شجاع و دلیر که ناماوران را قلب کردی و از امائل و اقران گوی برو بودی ملک او را ولی خود گردانیده بود چون شرکان بیست سال شد تمامت رعیت و سپاه فرمان او بپذیرفتند و ملک سی و شست همسر داشت و بجز مادر شرکان هیچ کدام از ایشان فرزند نزاده بود و هر یک از کنیزان و زنان ملک قصری جداگانه داشتند و ملک هر شب به قصری همی قنود غذا را کنیزی از همسران ملک آبستن شد و آبستنی او به گوش ملک رسید ملک را فرح بی اندازه روی داد و تاریخ آبستنی کنیز بنوشت و هر روز با او نیکویی و احسان می‌کرد چون شرکان از این واقعه خبردار شد ملول گردید و این کار به او ناهموار شد چون قصه اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است